اصل دواسته از آن دقیقه فرگات شروع شد که سه روز تمام پیوسته ادامه یافت و چنان وحشتناک که شنیدن آن از پشت در بسته ممکن بود از همان ای که به زنش جواب داد دانست که کارش تمام است و برگشتی برایش نیست و پایان کارش رسیده است پایانی قطعی و شکهایش همچنان بر جایند. جای خود را به یقین ندادند به آواهای گوناگون فریاد میزد آه ای خدا وای فریاد میزد نمیخوام. و هجای آخر را مدتی میکشید در طول این سروزی روزی که زمان برایش وجود نداشت مثل این بود که در آن کیسه سیاهی که نیرویی نامرعی و مقاومت ناپذیر او را به درون آن فرو چپنده بود دست و پا میزد. مثل محکوم به مرگی در دست دشخیم گرفتار با یقینی در دل که نجاتی برایش نیست دست و پا میزد. و هر دقیقه احساس می کرد که با وجود همه تقلاب و مبارزش به پایانی که از آن وحشت داشت نزدیکتر و نزدیکتر می شود احساس می کرد که رنجش از این است که به درون آن سوراخ تاریک فشرده می شود، اما وحشتناکتر آن بود که می دید، با وجود تقلایش نمی تواند از تنگ نایان بگذرد. آنچه مانع عبور او از این تنگ نابود، آن بود که خیال می کرد زندگیش به شایستگی سپری شده است. همین توجیه زندگی گذشته بر او بند میانداخت و نمی گذاشت پیش برود و بیش از همه چیز آزارش میداد. لاغهان نیرویی ناشناخته ضربتی شدید به سینه و پهروگش زد و نفسش را تنگ تر کرد در سوراخ فرو رفت و آنجا در پایان آن درازنای نوری دید حالش مثل وقتی بود که گاهی در قطار را آهن برایش پیش می آمد ای و خیال می کنی که پیش می حال آنکه قطار واپس می رود، و ناگهان راستای راستین حرکت را در می آمد. و خود گفت منه راه زندگیم همه نادرست بود اما عیبی ندارد میتوانم هنوز ممکن است به راه درست رفت ولی راه درست کدامه است این راه که گفت ناگهان آرام شد اینها در پایان روز سوم یک ساعت پیش از مرگش روی میداد پسرش آهسته نکه پا نکه پا به اتاق وارد شد و به سوی بسترش پیش آمد مرد محتظر پیوسته فریاد میکشید و دستها را به زرب به هر طرف میکوبید دستش بر سر پسرش خورد پسر دست را گرفت و آن را بر لبهای خود فشرد و به گری افتاد در همین لحظه بود که ایوان الیچ احساس کرده بود که از سوراخ فرو افتاده و روشنایی را دیده و دریافته بود که زندگیش در راه نادرست سپری شده است اما هنوز می میتواند آن را به راه درست بازآورد پرسیده بود که راه درست کدام است و ساکت مانده و گوش تیز کرده بود آن وقت حس کرده بود که کسی دستش را میپوسد چشم گشود و پسرش را دید دلش به حال او سوخت زنش به او نزدیش شد ایوان به او نگاهی انداخت زنش با دهانی بازمانده و چهری اشکالود درمانده به او نگاه می کرد ایوان دلش برای او هم سوخت با خود گفت من از بابا برای من قصه دارند اما من که بمیرم راحت می میخواست این را به آنها بگوید اما رمق نداشت که کلامی بر زبان آورد تازه گفتن نداشت باید عمل کند با نگاه به پسرشان اشاره کرد و گفت این طفل مصوم را از اینجا ببر دلم برایش می سوزد برای تو هم میخواست اضافه کند افم کن اما گفت ولم کن و رمغ آن را نداشت که گفته خود را اصلاح کند دستی افشاند زیرا میدانست که آن کس که باید بفهمد خواهد فهمید و ناگهان برایش روشن شد که آن آنچه آزارش میداد و راحتش نمیگذاشت ناگهان از او فاصله می گیرد و دور می شود. از دو طرف از ده طرف از همه طرف از او دور می شود دلش برای آنها باید کاری کند که آنها را نیازارد و خودش نیز از این عذاب خلاص شود و خود گفت چه خوب و چه آسان و باز پرسید و آن درد آن درد چه شد کجا رفت؟ های درد کجایی؟ گوش تیز کرد آه آنجاست خب ولش کن دارد میرفت و مرگ مرگ کجاست؟ وحشت پیشین خود را از مرگ که به آن عادت کرده بود میجست و آن را نمیگفت پس کجاست؟ چه مرگی؟ دیگر وحشتی از مرگ نداشت زیرا دیگر اثری از مرگ پیدانه بود به جای مرگ روشنایی بود لاگهان به صدای بلند گفت آه, آه چه خوب چه شادی بزرگی اینها همه برای او در یک لحظه روی داده بود معنای این لحظه دیگر عوض نشد اما برای اطرافیان احتضار او دو ساعت دیگر ادامه داشت. در سینش چیزی صدا می کرد. پیکر نحیفش متشنج بود. بعد صدای درون سینه و نالههایش رفته رفته آهسته شد. یکی برای سرش گفت. تمام کرد. ایوان لیش گفته او را شنید. و آن را در روح خود تکرار کرد در دل گفت مرگ هم تمام شد دیگر از مرگ اثری نیست نفسی امیر کشید اما نفسش نیمه کار ماند. پیکرش کشیده شد و مرد.